بسم الله الرحمن الرحیم الدماء الواجبه وما يقوم مقامها های واجب و آنچه که جانشین های واجب میشه یعنی چون کاری رو که باید انجام میدادی انجام ندادی یا کاری رو که نه شدی انجامش دادی الان زبه هیوان برید واجب شده یا آنچه که جای جای حیوانو میگیره از روزه و غذا دادن و این چیزها میگه واد دماغ الواجبت فی الاحرامی خمست و اشیا خونهای واجب در احرام پنج چیز میباشد شمای چیزی رو معمور بهی رو امر شده ای رو ترک کرده ای یا منهی یا رو انجام داده. حالا خون لازم شده این کارایی که میگه برشون خون لازم میشه پنج چیز هستن البته اقنا ماوردی نه اون اقناه شرح عبیشه جا میگه به شکل مختصر پنج تا هستن و به شکل بست نه خون میباشن اینجا این خونه رو پنج داورده خب درسته به شکل اختصار ولی به شکل بست نهتا احتامی که در آخر اگ شد میگیم پس احدها الدم الواجب به ترک خونی که واجب میشه با ترک معمور بهی نسوک یعنی معمور بهی مانند خون تمتع دیگه باله جوره تمتع وقران اینجا <تصفيق> دیگه میقات از اون محلش ترک میشه و هو على الترتيب میگا این خون و که جایش رو میگیره به این ترتیب زیر هستند یک شات ابتداش گوسفند لم یجد اگر گوسفند گیرش نیومد فصیام عشره ایام ده روز روزه بگیره ثلاثه فی الحج و سبعه اذا رجع من اهله سه روز در خود حج روزه میگیره هفته دیگر روز زمانی که به خانهش بازگشت پس خون اول اون خونیست که واجب میشه به ترک معمور بهی ماننده کسی که تو انجام داده و قران انجام داده که قبلا توضیحش رد شد این گوسفند میکشه گوشت شو بین حرام تقسیم میکنه اگر نیاف ده روز روزه میگره با شرحی رد شد و دو الدم الواجب بالحلق و طرفوحی خون واجب دوم دو خونیست که واجب میشه خاطر تراشیدن موها و سبب طرفوح ماننده خوشبوئی زدن روغن زدن و هو الا و این کفاره بر ای... با اختیار اون مکلف است اون شخص هست شاتون یا گوسفند میکشه که این خون و... اینو میگن خون او صوم سه أيام ایام یا سه روز روزه میگیره او تصدق به ثلاثه اسع الی سته مساکین یا اینکه سه ساعت بر شش مسکین صدقه میده یعنی هر مسکینی رو نصف ساعت. پس سه ساعت بر شش مسکین. هر مسکینی نصف ساعت. اینجا شیش سارو سی سارو شیش گرم به دست آورده یعنی شیش کیلو پانسد گرم شیش و نیم کیلو تقریبا سی پس دم اول به خاطر ترک نسوک بود اونو توضیح داد که شخص باید چه کفاری بوده اول خون بعدش جایگزینش، اگر حیوان نیافت در دومی خون واجه بر اساس حلق و که اینجا اختیار داره بین خون یعنی حیوان یا سه روز روزه یا صدقه سسا و خون سوم الدم الواجب و بالاحصاری خونی که واجب شده سبب احصار سبب من محرم از اینکه که یا عمرش رو تکمیل بکنه شخص احرام و بسته که بر حج انجام بده به هر دلیلی ممنوع میشه این هم برش دم واجب میشه، خون واجب میشه فیتحلل این که ممنوع شد از, حج از احرام در میاد و یه دیشاتن و یک گوسفند رو زبه میکنه حالا در پاورقی ما آورده میگه اگر آجز شد اونو قیمتشو میگیره با پول و با اون پول تاام میخوره و صدقش میده و اگر از این کار هم عاجز شد به جای قیمت هر مد یک روز روزه می گیره بله پس خونه سوم، اون خونی بود که به سبب احصار به سبب منع احرام کننده از تکمیل حج و عمره پیش میاد مثل اینکه برای پیغمبر پیش اومد دیگه احرام بستند که برند ولی مشکون اون سال اونها رو نگذاشت که دستور به هدیه داد همون قربانی که حاجی انجام میده و رابعه الواجب بقتل به قتل سید خونی که واجب شده با قتل سید سیدی که از منهیات قتلش شخص رفته سیدی رو زده شکاری رو زده اینجا و هو الاتخیر کفاره ایشون بر اختیار هست بین چند چیز ان کان السید مما له مثل اخرج المثل من النعمی. اگر اون سید مثل داشت مثلا خرگوشی رو زده بود یا یه چیزی رو زده بود مثل داشت خب مثل همون سیدو از این چارپایان محلیک داره گوسفند گاف شتر مثل اونو میاد چجای میکنه اگر اون سید مثل داشت مانند داشت در حیوانات گوسفندو و گاف او قومه و اشترى بقیمته تعاما و تصدق به یا قیمته اون حیوان مثلی رو قیمت می قیمتشو قیمت گیریش قیمت میکنه و با قیمتش غذا می خوره، تاام و اون تاامو بر فقرای حرم صدقه میده. پس اگر سيد مثل داشت از چارپایانی که داره زبه می کنه، اگر نه یا اینکه قیمتش رو می غذا می خره، با قیمتش غذا می و به فقراي حرم صدقه میده. او من کلی مد دنیا یا روزی میگیره به جای هر مد یک روز مثلا قیمت فرزن اون حیوان شده فرزن پنجاه مد خب به جای هر مد و, و اون مدارو رو نمیخره تام نمیخره خب به جای هر مد یک روز روز میگیره پس این زمانی بود که سید مثل داشت پس اگر مثل داشت یا خودشو خارج میکنه یا قیمتش رو یا اینکه روزه میگیره به جای هر مد یک روز و انکان سید و من مالا مثل له اما اگر سید مثل نداشت مانند نداشت در چارپایانی اهلی که طرف داره گوسفند و گاو و اینا بيقى اخرج بقيمته طعاما بقيمتش طعام فقرا بفقراء او صامعا كل مد يومان يا بجاي حر مد يك روز روز مديره والخامس پنجم الدم الواجب بالواطع پنجمين خون اون خونيك واجب مشه با واطعه با نزدیکی کردن، با آمیزش، با جمع. بله، این وقت دیگه حج و فاسد میکنه قبلا خوندیم. و هو علا ترتیب، این دیگه اون دم یا آنچه که جای بوزینه دمه به ترتیب زیره که شخص باد انجام بده. بعدانتون اولا باید شطوری رو بده بکشه فا ایلم یجدها فبقره. اگر شطور نیافت پس گاو فا ایلم یجیدها فسب اون من الغنم. اگر گاو نیافت هفتا گوسفند شطور گاو یا هفتا گوسفند به ترتیبی که بیان کرد اگر نیافت این خونا برش لازم میشند کسی که وطع انجام داده در احرام قوم البدنته اگر نیافت میگه هفتا گوسفند قوم البدنة واشتری بقیمتها طعاما وتصدق بیهی خب میگه قیمت میگذاره شطر رو به درهم قیمت شطر رو به درهم به دست میاره و قیمت بقیمتها طعاما و بقیمت همون شطر خوراک میخرد و تصدق به و صدق میده فا لم یجد اگر نیفت یا به عبارتی شو نداشت سامن کلی مد دنیا من به جای هر مد یک روز روزه میکره پس اگر شطور یافت شطور نه گاو اگر گاو هم نیافت تا گوسفند اگر اینا رو نیافت شطر رو قیمت میگذاره با درهم و هر چقدر قیمت شد به اون قیمت خوراک میخره و صدقه میده اگر توانایی نداشت روزه میگیره به جای هر مد یک روز در باارقی هم چیز قشنگی گفته میگه اگر توانایی داشت که قسمتی از تامو بده میگه اون تامو میده باقی مانده هرچقدر آجز شده بود و نتوانسته بود باقی مانده شو روزه میگیره ولا لا يجزئه ولا الاطعام الا بالحرم بله میگه براش کافی نیست هدی آمون قربانی کردن و اطعام دادن مگر در حرم کسی که براش خون لازم شده از این خونای پنجگانه ای که خوندیم اونو در حرم انجام بده. قربانیش بکنه. بهن فقرا حرم تقسیمش کنه. پس هدیو غذا دادن همونجا در حرم و یجزیه ان یصوم حيث اما روز گرفتنش هر کجا که دلش بخواد. چه همونجا بگیره چه بیاد خونه بگیره. ولا يجوز قتل سيد الحرم جائز نيس كشتن سيد حرام ولا قتل شجره وجائز نيس قت کردن درخت حرام والمحل والمحرم في ذلك سواء درين كشتن سيد حرام ودر قت کردن درخت حرام كما منو هستن المحل والمحرم في ذلك سواء اوني كدر احرام نيست و اونی که در احرام هست با هم برابر هست. فرقی ندارد. یعنی هم محل اونی که در احلاله. اونی که در, حرام در احرام نیست. و اونی که در احرامه فرقی نمیکنند. هر دو تا از قطع درخت حرام و از کشتن سیدش باله. خب تا اینجای ای فرق بحث تمام شد. پس این نقطه رو میگیم که پنج نوع حیوان یا خون واجب بود خونی که بخاطر ترک معمور بهی واجب بود فیدیشو گفت خونی که بخاطر حلق و طرفه واجب بود فیدیشو فی گفت خونی که بخاطر احصار بود همون حاجی رو من میکردن زین که بر حاجشو انجام بده خونی که واجب بود با کشتن سید و پنج خونی که واجب بود با وات با جما کردن و نزدیکی کردن از این پنج خون اونی که احصار خب اون دیگه مأمور نمیتونه بر حجش انجام بده ولی همین پنجمی که وطعه بود این حجو فاسد میکرد اگر البته قبل از تحلل اول بود تحلل اول چون تحلل اول که انجام گرفت دیگه همه چیز حلال میشه جز جماع کردن و نزدیکی کردن. چه زمان انج... این تحلل اول انجام میگیره؟ در یوم النهر نهر ستا عمل وجود داره اگر دو تا از اونا رو انجام داد دیگه تحللش انجام گرفته. قبل از اون بود اون جماع حج فاسد میشه اگر بعدش بود نه. اونا ستا چی چه... هستن؟ رم یه جمعه عقبه حلق و تقصیر و سومیش توافع افاظه اگر دو تا از اینها رو انجام داده بود دیگه تحلل اولش انجام گرفته دیگه اگر بعد از این جماع انجام گرفت وقت انجام گرفت حجش باطل نبیشه موفق و پیروز باشید